فیلم لیلی با من است نویسنده رضا مقصودی بازنویسی کمال تبریزی بازیگران پرویز پرسوی مرد حسابی مگه نمیبینی زنه بچم دارن خاک خونده نگی زندگی میکنن محمود عزیزی در واقع این آقا بکتاش رو زیاد میکنه اینطوریام نیست شهره لورستان خواهش میکنم بی روغن سرخش نکن تو اگه راست میگی برجسته فرش ها رو جور کن دو هفته سقب افتاده رحمان باقریان یا خدا اینجا 50 متر جلو از خط مقدم دیگه راه برگشت نداری مهدی فقی مخلص پدرتم هستم ولی موجود نیست. کارگردان: کمال تبریزی. موسیقی متن: سید بهنام ابطهی. تهیه کنندگان: سازمان سینمایی سبحان، بنیاد سینمایی فارابی با مشارکت سیما فیلم. پاتول زرد صدا و سیما در جاده در حرکت صادق مشکینی که مردیست سی و چند ساله با ریش مرتب و موهای کمی بلند و سبیل تابدار و عینکی گرد در کنار همکارش آقای کمالی که موهاش جوگندمیه و معلومه که چند سالی از اون بزرگتره و از محاسنش پیداست که آدم متحدیه نشسته پشت فرمون و یادش میاد که در حضور همسر و پدر و فرزندش با یک کارگر جلوی یک ساختمان نیمه کاره جر رو بحث میکنه کم داری, تیکم داری. شی ماماسم، مداش برنامه فاش کردن اتاقا؟ چرا تا حالا نگفتی. دست دارم میگم این خیالته. به کی گفتی؟ به خود شما؟ آقا جون، مرد حسابی مگه نمیبینی زنه بچم دارن تو خاکی خوز زندگی میکنن؟ چرا کارو تموم نمیکنی؟ خودتون ناراحت نکن ساده. مرد حسابی هم خود وقتی دستم خالی واسه دازن، علایم نگاه کنم؟ نمیخواد منو نگاه کنی. کار شاخ به شاخ. چه حرف میزنی؟ وقتی پول نداره میخواد میکنی ساختمون میسازی. دست به یغمی. خودت تمام وجودت مردی که چی داری میگی؟ این قصر خودت. بابا؟ خب راست میگه. هر کاری برای خودش لوازم میخواد، مصالح میخواد. حرف حساب که جواب نداره. حالا توی خونه هست. با دست خالی که نمیشه خونه ساخت بابا. اونم این قصر کرملین. لحنه گنده تر از چی میگی خانم. مگه من از شما ته پول گرفتم میزنی؟ تا رو جور کردم بعد از اینشم هم جور میکنم خواهش میکنم بیروغن روغن سرخش نکن تا اگه راست میگی برغصد فرش ها رو جور کن دو هفته سقب افتاده ببینم بابا جون به صندوق سر زلی باششین بله رفتم اما فایده ای ندااشت برای جید. آقای کمالی مگه چقدر میخواست؟ اقدارش که براشون مهم نبود اینتونست قابل پرداخت باشه اما کارمون از جای دیگه لنگ بود الهی میره خودده مشکنی جروی م یاس بیریشیش میکشه توی مسجد مسجد حاجاقا منصوری نشسته مشکینی پشت سر مرد ایستاده اگه مدارکت زودتر آورده بودی همین الان بهت پرداخ و خب ببینم سفته آوردی اینهاش امشب بعد از نماز میتونی بیای باشه میام امشب بیا چاشاره میکنه که مشکینی نفع باشه با اجازه به سلام مرد می امشب بعد از نماز یادت نره ببخشید شما ما چیکار کنی. چی چی رو چیکار کنید با هم دیگه آخه شما دیروز فرمودین که بعدم بیام گفتم بعدم بیام نگفتم که فردا بیام مشکینی خودشو پای میز حاجاقا میرسونن الانم موجوده کمه اون مقداری که شما میخوای باید صبر کن. حاجاها دیگه واقعا دارین کم لطفی میکنین آخه قربونتون برم شما من زیاد نمیشناسین تلرما که میشناسین با هم رفیق بودید آشنا بودید رفت آمد بله مخلص پدرت هستم ولی موجود نیست میده پشت نیزه ها اه... اینجا نه برو اونبر ولی چشته. نیست اگر نیست پس چرا به این دادید به کی؟ همین که پیش از پای من اینجا بود لا اله الا الله اولا ایشون مدت هاست که تو نوبت بوده برو اونبر بازم نیست ثانی با این که جبه بوده مجروه جنگی هم هست بازم راهی جبه است. قبول کنید که باید کارش را حقشه ببینم شما تا حالا جپه رفتید؟ دوباره شما رفتم جدی میگی؟ عجب من نمیدونستم <تصفيق> البته اولای جایی بود درست زمان دانشری علا صحیح بله خاطره که تانکی نزدیک میشه صادق با دوربین روی دوشش ایستاده لوله تانک به طرف صادق برمیگرده حالا صادق آرپیجی روی دوششه هر دو با هم شلیک که تانک منفجر میشه. زنهش از خواب میپره. نترسلای خواب دیدی؟ وحشتناک. خواب دیدم تو رفتی چپ. یه تیر گونده بهت خورده. زخمی شدم؟ نه. مُردی ساده. ادامه بده یه سفره. بله دیگه. مو این فکر رو میخوای که خوابش هم میبینی. حتماً میخواد از شرم خلاص بشه. بلند فکر کرده. نه آقای مشکینی شما اشتباه میکنید. بهتون بگم حاج آقا منصوری رو من از قدیم میشنستم. نیت پاکی داره محتاج شما باید توازه رو کنار میذاشتید و بهش میگفتید که من دره بودید بله اینجور چیز گفتن نداره برای شما میگم هر جایی که نمیگم درسانی کاغذ و مدرک میخواد ما هم که نداریم خب میتونست یکی رو پیدا بکنی که شهادت بده بله ولی متاسفانه شاهد من موقع دیدنم خواب بوده. ب یعنی این که چیز منظورم خودم هستم اون لحظه از فرد حیرت تو خواب و بیداری بودم و شاهدی هم به اون صورت وجود نداشته صحیح با این حال من مطمئنم اگه حاج منصوری پی به اخلاصی که در وجود شما هست میبرد قضیه فرق میکرد اختیار داریم اختیار ما کوچیک شما هستم هیچ وقت روزی رو که با شما آشنا شدم یادم نمیده بله،, بله،, بله عجب گیری کرده آمانیدوس صدا وسیم این آقا یه مشکینی همکار جدید واحد از امروز در خدمتشه بکتاش مردی بااست اینم آقا کمالی هم. دلاور واحد فیلمبردارا بهترین تصویربردار جپ و جپ در واقع این آقا بکتاش پیازداقش زیاد میینه اینطورام نیست اینم مدرک چفیه یادگاری جپ هست آقا کمالی هیچ خونه از خودشون دور نمی‌کنه بله بله حتن پاشونم توی ها سیب دیده درست میگم یا نه؟ بله دیگه جپه رفتن این هم داره دیگه کمالی چفیه رو دور گردنشون البته شما هم باید توی این سفر موازی خودتون باشیدا. از سر ناشاری راستش راستشو بخواید اون موقع هیش فکر نمی که شما هم اهل جپه و انقدر مشتاق اومدن به این چوچه ها باشد بله بله خواهش میکنم خواهش بله میگه آقا. دفتر آقای بکتاش. میگم ما یه وقت ما رو چپ همه سیاه سیا. من این جزجانم نمیتونم برم. برنامه چپ تو قبضه ایناست. رو این سمالی کمالی. حالت میده. راحت باشه تو بی خودم. آقای کمالی از اطراف بیرون میاد میکاریم. زمینان من یه مشکل دیگه دارم که گرش فقط به دست خودت باز میشه. چه مشکلی؟ خودم نیمه کاری مونده پول ندارم تا کنم دستم خالیه جون و صادر. ولی مخلص هستم. از تو نمیخوام ببین یه وام میتونی از اداره برام جور کنی بابا جون سابقهت کمه اداره بهت وام نمیده بابا من 4 پنج سال کارمند تلویزیونم دانشجو بودم باشه باید کمی ساب کنی اوه از تو جلو تراتون نوبتن شنیدم یه صندوق بچه های فیلم مرد رو دارن که آره دارن برای اونم باید ساب کنی اه اه راستی همین کمالی یکی از اعضای از هیات مدیرشه خب حرفشم خیلی خیلی رو داره به جون ساده خیلی هم بهش احترام میذارن اگه این بگه بدن تموم میدن تو بهش بگو دیگه واسه خیلی جور کردم دیگه محل ندارم یعنی کوپونم پره خودت باید دست به کار بشی یه کمی وقت میبره اما عرضش داره آدم بدی نیست باش رفیق بشی هوا تو داره توی ماشین مشکلی فکر زنی باید باش حرف بزنم که خودمونی بشیم. رسی آقای کمالی بله اه... میخواستم بگم منم اون روزیره که قرار شد با هم بیایم جبه هیچ وقت فراموش نمیکنم. کنم کمالی لبخند میزن راستش فکر نمی کردم گه همچی سعادتی تو خوابم نصیب من بشه البته یه بار تو خواب نصیبم شده به هر حال از شما خیلی ممنونم آهش میکنم اینجور چیزا دست بندگان خدا نیست باید خودش بتگه صادق نگاهی به آسمان میکنه بله اتفاقاً اینم هم از همون خاطراتیه که هیچ وقت نمیشه فراموشش کن سلام آقای کماری سلام آقای نشینی حالتون چه داره؟ خیلی ممنون چه خبره؟ راهی هستین؟ دیشب یک عملیات وسیع انجام شده برادرها دارم میرن جنوب اه؟ چه جالب اه؟ ببینم مگه خود شما باشون نمیریم؟ نه نه براش مشکلی پیش اومد حجب هر چند خط مقدم نمیریم بلی برای تهیه گزارش باید بریم اهواز باشه البته یکم این طرف یا اون طرفش فرقی نمیکنه مهم اینه که جبه باشه آش به سعادتتون اوم این دستیارتون که نیست با کی میرید من شما با هم من, من, من, من, من, من, شما, من, من شما با هم. بس. البته سعی کردم یه جوری بگم که جو... جا نخوریم جا؟ جا که... جا که خوردم البته انتظارش ن... نداشتم یعنی قرار نبود که این حالت ها از خوشحالی هم. من از ما گروه خواستم که شما به جای دستیارم همراهم هم باشید ایشون قبول میکرد ولی من به ایشون گفتم که شما چقدر مشتاق سفر به اون طرف ها هستید. بله مشتاق خیلی مشتاق متعال یه سریع به دفتر بزنم چون کار دارم بدخشت مشکینی از کمالی جبا میشه از باید آقای مشکینی باید هم رو ببینیم. راجب سفر و قرار حرکت باید با هم صحبت صادر صادق در حال رانندگی دلش میخواد کمالی رو بزنیم. اما کمالی خوابه و این حرکت اون رو نمیبینی بازم یادش مید. دفتر آقای بکتاش عده زیادی دور میز جمع شده مشکنی به اونا میرسه. چرا آقای نصرتی هستن به جای آقای بکتاش اومدن؟ آقای نصرتی؟ آقای مشکنی هستن از همکارای جدید. بله، ذکر خیرشون از آقای کمالی خیلی خیلی بمحاسن. راستش ایشون خیلی اسرار داشتن همراه ایشون با به ماموریت اهواز برن. خ... خ... خیلی ممنون. ایشون لطف ورن. پس یعنی من از اسامی الان که برنامه هستم دیگه. بله بله اصلا نگران نباشید. اسمتون رو به ترابلوی ب... الانات زدم. نه، اصلا نگران نیستم. از خوش تفوس آدم نمیگوزه. بغض کنان میده ای خدا میچنم کردی اگر با من جلوی تابروی آفیش مردی میان سال با محاصل موهای کمپشت ایستاده و میخونه صادق مشکنی به اون نزدیک میشه روی رو میخونه بله اسمش هست مستحسنه زرف مرا مشکست اگر با من نبودت شیچ آقا چرا ظرف مرا بشکست لیلی آه. جونم آقا بفرمی سلام شی خیلی ما ببخشید شما میدونیده الانی آقا یک اکنش کجاست اتاق تصویر برداران یا فکر میکنم تو اتاق 123 باشه تو گل جنگ خط مقدم تو خود خود احواز اکیه بابا مسته بده شد خط مقدم کدوم مرد حسابی احواز امنه امانه مردم درن تو زندگی میکنن من نمیفهمم تو چیم بابا ایوالا دست خوش یادت رفته. عروسیت داداشت یاد رفته عزیز من جان من اون اوایل جنگ بود دشمن تا نزدیک شهر اومده بود اهوازی راه آتش توپخونه بود به همین دیگه آخه خط مقدم که شاخ دم نداره بی خود چلوغش نکو صادق احواز الان هیچ خبری نیست بابا جون چلایش صد میگی فیلم میگیری برمیگادی میای دیگه کجا خط مقدم باز زیر تیر تفنگ باز هم میگه بابا جون اهواز یه شهر ساکت و آرومه تا خط مقدم میدونی چقدر فاصله است امروز که بری چهارشنبه اینجای تا موقع جای منم تثبیت شده یا گروه صنعتم یا گروه شه. و احترم میبرم پیش خدام میشی فیلمبردار ثابت گروه اونجا دیگه نه از جنگ خبری نه از جبهه به تو هم میگن رفیق ببینم مگه تو وام نمیخواستی مگه دنبال فرصت نبودی بری و برگردی وامت جوره فقط کافی تو را دم کمالی رو ببینی از تو خوشش میاد جنوساله تا حالا چند بار بهم گفته سعی کن بیشتر تو دلش جا کنی انقدر قد خودت تو خوب نیست بیا برو فقط کافی تو را دم کمالی رو ببینی صادق عین رانندگی میخواد همون کارو بکنی آقا پات چه میرسی ما کمی طاقت بیارید چیزی نمونده بالاخره میرسی من که دیگه طاقت ندارم دلم میخواد هر چیزی سر برسی آدم باید جلو اجتیاق خودشو بگیره کمی این میل پرزدن رو در خودتون مهار کنید بالاخره میرسی خدا کنه سودم برگردیم به خانواده گفتید کجا میری؟ بله به اونام گفتم خیلی هم تفرقه خوب برخورد کردم زمینن وصیت هام همه رو براشون نوشتم مشغول نوشتن وصیت هام در حضور همسر طبیعت وصیت نامه ربان بودی مولا وصیت نامه صادقه مشینی کافلاس خلاص ببخشید من خواهم برات دیدم من منظوری نداشتم <تصفيق> در راه سفر صادق چشمش به تابلای اهواز بیست و پنج میرفته بیشتر میشه نگاهی به کمالی میکنه. سعی میکنه خودشو آرون میشون میده حالا رسیدن به شهر اهواز خیابونها و بازار اهواز خیلی آآا انگار آه آتش دادن ببینم اینجا که خبری نیست خبری بود روزای اول جنگ اینجا هم امنیت نداشت اما همون اولش دشمن عقب روندن اجا پس اینجا امنیت داره به لطف خدا به حله یعنی خطری برای کسی نداره نه هم نه هم نه. ببینم ما اینجا کار داریم دیگه. ولی امروز کارمون تموم بشه فردا برمیگرد خوشحال شد چی حف شد, شد. میدونید خیلی دلم میخواست تو خط مقدم جلوی دشمن وای همو بگم آخه نامردایی روزگار از جون این مردم چی میخوان؟ نه، نمیشه آدم تا اون جلو نباشه و نجنگه نمیتونه آروم میگیره صدق شکل ازرگر میدونی آقای کمالی؟ خیلی دلم میخواد یه دون اون شالایی که دور گردن سربازاز بخرم خیلی قشنگه اسم خوبی داره <تصفح> چفیه آره چفیه <تصفح> <تصفح> یادم باشه یه آدم باشه اطف توی بازار صادق چفیه دور گردنش امتحان برمی گرده طرف کمالی که توی ماشین نشسته تا تایید کمالی تعییم آقا همین خود گفتم یه یادگاری بگیریم بگیم ما رفتیم خط مقدم جپه یه مدرکی چیزی با خودمون ببریم میدونید از شما خیلی خوشم اومده عهد کردم برای سفر بعدی شما رو با خودم بیارم نه خیلی آقا وسیمون کنه ها کش تسلید. نه نه نه اخر یعنی بله گفتم که انشالله قسمت بشه که بازم با هم دیگه هم سفر بشیم ما که از خدا میخوان انشالله بریم الله داریم دیگه مراسمی مرکز فرهنگی میشتمون کمی میتونید بس فردا شب کنین بلکه بیارنش اون نه آقا ما ما, ما ما کار داریم حالا کجا هستن لب کرخه اگه عجله دارید میتونید برید اونجا فعلا توی اردوگاه موقت هستن حالا این کرخه چیه کجا هست رود کرخه بگو ن... نکنه نکنه نكنه خ... خ... خط مقدمه بی خود دلت خوش نکن از کرخه تا خط مقدم کلی راهه کرخه نزدیکه همین جاست مطمئنی م... بله. م... مطمئن بله تا جپه خیلی فاصله داریم برات متاسفم خواهش بکنم چاره چیه بالاخره باید واقعیت رو قبول كردی گونی‌ها روی هم و یک چادر کمی دورتر صادق با چفیه دور گردن به یک رزمنده میرسه سلام علیکم سلام علیکم. خسته نباشید خلی memnunم. این اسره ایراقی کجا هستن؟ اون طرف رودخونه تو اردگاه ما فیلمردار تلویزیون هستیم، می‌خواستیم بریم اون طرف. کارت تردد داریم بله، کارت ترددم. الان میرم خدمت نه، از اینا نه. کارت تردد. خب اینم برگ مأموریتی دیگه چه فرقی نه نخوی. از این رودخونه به اون طرف منطقه جنگی برسون میم. بعد کارت منطقه جنگی داشته باشی. منطقه جنگی اون طرف منطقه جنگیه. بله. کاغذو بسادر برمیگردن. خیلی ممنون. باج جاتون. ما مثل اینکه آدرس اشتباهی اومدیم. خوشحال رو تا میکنه میذاره توی جیبش. صادق با عجله و خوشحال سوار ماشین که وججنه میشه و دنده عقب می. چیشا چرا برمیگردید؟ نمیشه رفت اون طرف آقا. اون بره ردخونه جنگی نمیذارن بریم. صبر بین ببینم موضوع چیه. صادق ماشین رو متوقف میکنه. کامیلی نگران پیاده میشه و صادق تا. منطقه جنگی. خدای ها دستم به دامنت از این جلوتر نمیتونم بیاما قربون اون جلال و جبروتت قربون بزرگیت برم ما طاقت نبریم یه خطر یه جوری از سر ما رد کن یا چشمش میفته به کمالی که با بایین به ماشین نزدیک میشه پونسد تو ما سلقه نزدیت میکنم که سالم برگردم ما خیلی گرفتاریم زن و بچه پدر آخه همه چشم را برای دریا کمالی سوار میشه و صادق خونشون نراحتی شد چاره نادریم باید برگردیم برگردیم؟ بله مجبوری یعنی دور بزنن؟ برای دیگه برگردیم صادق را میافته خوشحال پولای تو جیبشو در یه 500 تومنی برمیداره می بوسه به پیشونیش میزنه و میذرتش چشه. نذ کرده بودم وقتی مادم خط مقدم جبهه 500 تومن در راه خدا برم. خدا های شاک تو چقدر خوبی؟ خب اول برم اهواز یه سره برم برو سه تا تبلیغات کجا برم؟ احواز سه تا تقیقات برای چی؟ باید دو تا کارت ترداد منطقه جنگ صادق جا میخورره فکرشم نمیکرد. 500 معنی رو آارم برمیداره. میذاره توی جیبش تبلیغات جبه و جنگ پاترول زر جلوی در تبلیغات میسته کمالی پیاده میشه و باز سادر تن شما همینجا باش من برم کارتاره بگیرم و بیام کارت تردد دیگه چی خدا شم قرار ما که منطقی جنگی نبود من که خط ما قدم نمیرم دماغ میشه لحظه ای فکر میکنه و خنده روی نباش میاد. صادق از ماشین پیاده شده کاپوت ماشین رو بالا میزنه اهرام نگهدارنده رو سر جاش میذاره معلومه میخواد شیطنتی بکنه چون دور و رو داره نگاه میکنه بله میخواد قطعه رو از روی ماشین برداره که ماشین روشن نشه همین کارم میکنه بازم احتیاط میکنه کسی نبیندش. و اون قطعه رو به پشت سرش پرت میکنه و در کاپوتو میبنده و میشینه توی ماشین خوشحاله که استارت نمیزنه. بابوسه ای از خدا تشکر کن. خلاص. <تصدق> حالا هر چقدر دلت میخواد کارت تردید بگیر آقای کمالی چه جوری میخوای بری؟ آقا رو. حالا صادق جلوی ماشین ایستاده. کمالی از تبلیغات بیرون اومده و لنگان لنگان به طرف صادق میاد. آقای مشکینی متاسفم. آقا منم متاسفم. شما چرا متاسفی؟ باور بکنید اصلا قصد نداشتم شادی شما رو خراب کنم. ولی شرمیدم. آقا یکم دیگه کشش بدیم من سکته میکنم تو رو خود حرف بزن چی شده؟ هیچی. حاجا حسین‌وانی نیست. رفته خط. خب خب کارت دو باید از اون میگرفتیم حالا معلوم نیست که صادقه صادق رو می‌گردونن طرف دوربین. آینه اون موزیانه داره می‌خنده. راست بگی خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی دیگه باید برگردیم تهرام تهران ماشین رو چی کار کنه؟ ملا ای داده بیداد آقا دیگه چه خاکی به سرمون شد تو سرزنون میشه افتزاش افتضاح کمانه افتزا. پیشیشیشی خود اونو رد نکنید فضای سرد این شده دفعه بعد. مدام روی زمینو نگاه چیچی خود را رد نکنم عذاب کشیدین بیچاره شدی اینقدر مهم نیست باور بکنیم من تمام سعی خودم رو کردم من احساسات شما رو درک میکنم نه آقا شما اصلا احساسات منو درک نمی‌کنید شما نمی‌دونید من بعد چی دارم میکشم گفتم که اصلا مهم نیست ببینم شما دنبال چی می‌گردید خدایا خود رم کن خب می‌خواستم همون خداست عزیز من شاید حکمتی توش بوده اعتراض با خواست او اصلا درست نیست آقای مشکینی خواهش میکنه. بیا برگردیم که بازم روی زمین رو نگاه میکنم بلند میشه بله چاره نیست باید برگردیم ولی آقای کمالی من آخه چجوری برگردیم ندونم خیلی مشکلیم ولی راه هم نداریم بدون هم هی جایی نمیتونیم بریم آخه مسئله سرینه که ما با کارتم جایی نمیتونیم بریم برای چی؟ چیز این شما شما که رفتی بعد من هرچی استارت زدم دیدم روشن نمیشه خب مسئله نیست این بعضی موقع ادا در میاره یکی دوتا استارت بزنی را میفته. زویش روشه بله همون جاست میگه و سمت ماشین داره همون سوار ماشین میشه صادق با چوب دنبال فتی که خبر نداری چندتا که ساله ساعت استارت هم بزنی روشن نمیشون صادق اطعا پیدا میکنه ماشینش میکنه و به طرف ماشین. ای آقای کمالی استارت نزن آقا گل هسته استارت نزنی من یکی که سیم پیدا کردم الان درستش میکنم جب میکنم چه شده کمالی پیاده میشه و صادق به طرف کام پیدا سید سلام سید، کمالی یکی از بچهای تبلغاتو میبینه و به طرفش میره و سلام و روبوسی میکنه. فرصت مناسبی برای ساخت کارشته داشتم. یکی اینس بگه عقلت کمو من؟ آخه به ماشین چیکار داشتی؟ آقای این مشکینی. بعد نیست با آقای سید ما آشنا بشی. این آقای مشکینی همکار ماست. سرور ماست. هر چی ازش تعریف کنم کم گفتم. عاشق جپو جنگی. از چهرهش مشخصه نور بالا میزنه. اختیار دارین. ما مخلصیم همین چند دقیقه پیش به خاطر اینکه نتونستم کارت تردد جور بکنم حسابی آلش گرفته شد داشت پس میفته کارت تردد کجا؟ منطقه جنگی دیگه سمت کردخه خب ایشالا درست میشه شما یه بار دیگه سر بزن ولی آخه هاج آقا که نیست کی میتونه کارت بده؟ این حرفانی آقای مشکینی اگر بخواد جور بشه میشه ه... ه... ه... البته آقا یا علی بریم آقای کمالی بریم چیکارا میتونیم بکنیم بریم سه جون ببینم چهجوری این مشکل میتونیم حل کنیم ببینم شما راه کمالی و سید ببینیم مسائل دکتر مشو میشه پسرانم بچوک تا این سبل برنگشته خیلی خطر رو جون اثر میرسه کمالی که تا آدم در تپخات رفته بود کمی بعد میگرد صادق هم گفت رو سر جاش موکب ببینم خیلی کار داره ندیگه تموم شد صادق امیدوار سوار میشه و استارت میزنه روشن نمیشه. کمالی هم از دور میبینه و طرف ماشین میاد. سیدی هم که دستاشو پشت سرش گرفته از تابلوهات بیرون میاد. کمالی به ماشین میرسه و صادق هنوز نگران استارت میزنه که آقا بفرمایید درست شد اینم ماشین درست شد این هم کارت جدی میگید الله اکبر چطور جونش کردی میبینی آقای مشکنی حالا میتونی پر بزنی پرواز کنی. بله، وا وا واقعا نزدیک بود پرمه با آقای مشکینی، ما جدن التماس دعا داریم اون جلو ما رو فراموش نکنید چشم، من شما دعا با باشه چشم مشکینی و کمالی توی ماشین سادک خیلی عصبیه این سید هیچ وقت توی شهر پیداش نمیشه همیشه توی خطه حالا درست، وقتی کار ما گیر کرده یه سرکلش پیدا شد الله اکبر. فضا خیلی بیسته. ببینید بغاستون چیزی که دیدم. نیروهاشون ندام. دید. از کانونی به طرف پل کرخه رد میشه. به همون منطقه قبل رسیدن که با تناب راه بسته شده. صادق کارتو به همون رزمنده نشون. خلاص میتونم برم. یه دقیقه اینجا صبر کن. حادث اردوگاه رو بگیرم. صادق که حسابی ترس برش داشته کنار تانک توقف کرد. هنوز چفیه دور گردنش. کمالی پیاده شده وارد واحده تبلیغات میشه. آمده. پسر جوون کشت سری پاستار از واحده تبلیغات بیرون. خدا رو میبینه که دیگه رو پسر جوون جعبه مهمات میشه. صادق سری تکون میده. می. صادق پیش پسر جوون می. اونم رو گرده که نمیزن میشه چی شده آقا؟ چرا ناراحتی؟ مکنه تو هم میخوایی برگردی آقا نمیشه خانبرم جدو شما جلو نمیرید؟ بل بله ن... نخیر ما میخواییم بریم اردوگای و سرایی که تازه او... گرفتن اونا رو یه ساعت پیش بردن احوازم اردوگاه کسی نیست راست میگی؟ خدا رو شکر پس ما بر میگردیم احواز پیش اوسرای نازنی پیسر چپ چپ نگاهش میکنه و هر دو بلند میشه من منظورم اوسرایت جنایتکارت بعضی پدر سختهایی بیتربیته من اذاره میخوام ببخشید لبخندی میزنه و پسر جوان گریان رو رها میکنه و به طرف ماشین میره حالا توی ماشین بی خیال منتظر کمالیه که کمالی میاد و سوار میشه باید برگردیم احفاظ ای بابا من که اصلا دلم نمیخواد برگردی بابا ما تازه اومدیم منطقه جنگی باید باید بوی خط مقدم میاد ولی دل و زبانی راحتی برگردی. راه میافته واقعا که ناراحت کننده است خب دیگه ماموریت ما هم اینه ات بریم اونجایی که اسرا او هستن. ها رشته میشه که اگه میرفتیم خط مقدم، اگه میرفتیم خط مقدم چی میشد؟ خیلی خوب میشه. کم سالتی یعنی همین دیگه راه رفتن رو برمی‌گردن. به همون جایی میرسن که با تنب بسته و در کنارش تابلو خسته نباشی رزمنده دیده میشه. ماشین جلوی تنب توقف می کنه. لطفا لطفاً. نمیتونید رفیق بزن کنار. و... چی شیخ عملیات شده تا 24 ساعت نکسی کسی میتونه بیاد نه برگرده آقا ب... ببین صد کنم صادق به دنبال رزمنده پیاده باشم ببینم آقا جون بفرمایید بابا ما همین یک ساعت پیش اینجا بودیم نیم ساعت پیش به ما این دستور دادن عجب حرفیا بابا قربون شکل ماهت برم ما کلی کار داریم ولمون کنم بزو برگردیم آخه برادر عزیز کمالی هم پیش اونام میریم از اردوگاه اسرا تو اهواز فیلم کنیم. برادر عزیز اگه امکان داره اجازه بدیم ما رد شیم ما فیلم برداری از حسرهای عملیاته غیر ممکنه لطفا ماشین از سر را برداریم حالا ماشین زیر تاقیه که با داربست و حسیر درست شده کمالی و مشکینی توی ماشین نشستن و چندین سرباز اون نزدیکی هستن بله صادق کلافه پیاده میشه دیگه چفیه دور گردنش نیست کنار چرخ اقل میشینه میشه. ایرهن آبیشو در میاره و حالا فقط زیرکوش آبی تنشه در همین لحظه یه کفی از اونجا رد میشه که روش یه تانک هست بلافاصله یاد خواب همسرش مفته همون تانکی که به طرف خودش میومد و RPG زدن خودش و مورد اصابت گلوله تانک قرار گرفتنش و انهدام تانک نگاهی به اطرافش میکنه چپ، راست داره به یه چیزی فکر میکنه شاید یه نقشه نه درسته یه هو خودش به رحشه میزنه دست و پا و صورتش به شدت میلرزه رزمندهای اطراف که اونو میبینن به طرفش میان کمالی هم میان نفسش به شما رو افتاده یه نفر آب به صورتش میپاشه آقای مشکری شیشون آقای مشکری والا صادق حالش خوبه، شده، چیزیش نی، بیمارستان لازم صادق کمک میکنن و صادق رو روی صندلی عقب پاترول میخورن. همچنان میروزه. از دژبانی که نمیزنن ردش بیمارستان از کدوم جایی؟ بیمارستان 20 کیلومتر اون طرفه. حالا کمالی پشت فرمونه و به جهتی که رزمنده گفته میره در حین رانندگی نگاهی به عقب میندازه. صادق که زیر پتو همچنان میلرزه. کمالی نگرانه. صادق آروم سر از زیر پتو بیرون میاره تا اوزار رو بررسی کنه. تو میبینه از اون منطقه دور شدن. آخ کجا داری میری؟ بگی بخواب. بریم یه برام بیمارستان. آره خوبه. بیمارستان خیلی خوبه. آه آه. ببینم از پلی کرخه کهی رد شدی اصلا رد نشدی دارم این برمیت بیمارستان زهرایی بیمارستان بی سهرایی کجا؟ هنشیش کیلومتر جلوتر صادق سریم نیشی جلوتر یعنی کجا به طرف خط مقدم؟ خط که نه ولی نزدیک هستی بگی به خاکش رو بلند شدی؟ بیمارستان همین ما... ما... طرف هاست من ما... حالا خوبه من اصلا طوریم نیست خوب شدم اصن احتیاجی نیست برم بیمارستان. حالم خیلی خوبه. آ نگاه کن. حالم خیلی خوبه. سر یه پیرهن نظامی تنشه. دکتر باید شما رو ببینه. نه آخر لازم نیست ببینید. محالم خوبه. به خدا حالم خیلی خوبه. دیگه هم نمی‌لرزم. نگاه کن. سالم سالمم. نگرد. نه شما هنوز حالت خوب نشده. نه دکتر باید شما رو ببینه. خوبه، صحیح و سالم. تو رو خدानگهرد جون من نگاه. بابا اصن حرکت برام بده. شما یه چند لحظه نگرد من استراحت کنم حالم خوب خوب میشه. بابا تو رو قرآن نگردار. کامیونی ماشین متوقف. حالت خوبه؟ آره بابا خاطرجم باد. توپ توپم خیلی زیرگی همین که بوی جپه به دماغت خور خوب شد آره ولی آخر ولی تا <تص> اونجا خیلی فاصله داریم بیشتر از این هم نمیتونیم جلو بریم کارتامون تا همینجا اعتبار داریم ای چه خوب یعنی چیز چقدر بد شد آره بدشانسی آوردیم نمیتونیم جلو بریم نمیتونیم برگردیم ای راستی اونجا نگاه کن یه ایسگاه سلواتیه یه استردگاه برای رزمنده ها آرشگاه هموم نارخوری از اینجور چیزا داره <تصفح> موافقی بریم یه نهاری بخوریم و برگردیم برگردیم؟ متحصفم ناچاریم برگردیم ولی <تصفح> <تصفح> بله. البته درسته. گایی اقا دادم باید پارو تمایلاتش بذاره میگم اگه قرار برگردیم خب یکم زودتر برگردیم چشم دادم؟ حالا پیاده شدن. یه نفر از همام سلواتی با حوله روی سرش میاد بیرون صادق دوباره چفیاره دور گردن شده نمیخوای دوش بگیری؟ نه بارونشا های تو جا میاری؟ آره من حالم خوبه فقط هر هرچی زودتر نهار بخوریم که بر, بر... چیه؟ بد ب... جوری این ماشین علی چی؟ یه پاترول گلالود سراخ, سراخ شده, شده دیده خدا کنه اتفاقی براشو نیفتده باشه باد موهای صادق و جولی دیگه همین طرفا باشه. به نظر توجهش جلب میشه. عجب. بری زدم. جی عمو نکنم دیگه کسی تو رو بشناسه. بیا فدای شدش. سلام علیکم. بابا شما کجایید؟ با... علیسنی بگو. سلام علیکم بس. آقای جولی. موچا حالت شما خوبه؟ خسته نموشید؟ چه بلایی سر این زنگو بس آوردید؟ می‌بینی؟ هنوز به خط دوم سوم نرسیدیم دو تا خون بوم بوم این برامون افتاد. هم اما آمو فعلا گواسی پورتابلم میپورتم دو تا تکیه شن آورده اسمیشم کششیم ای والله صادق نگاری شده آره بابا شانس آوردیم که آتیش نگرفت بغله باچم سولاغ شده راستی تو اینجا چیکار می‌کنی از این دلاور بپرس ما رو کشیده اینجا کشی خط رو ببینیم خدا توفیقش بده خیلی دل داره آقای کمالی مخلصه رو جماله <تصفح> خواهش میکنم وظیفه‌مونه ببینم قبلا هم این طرفا بودین شما بله زمان دانشویم هم فیلم برداری میکردم هم یه چندتایی تانک ترکندم پس RPG زن هستی بله بله با اجازتون البته یه تیر بزرگ تانک بهم به خورد که از اون به بگینگی این طور به هم ریخته عجا بله بله بله حالا هم در خدمت شمایی میگه آقای مشکینی از همکارای جدیده انصافن که جوان پاکی ببینم شما کارت تردد منطقه داری آره میخواد فکر کنم داره جور میشه ببینم تا خود ختم میتونی بریم اگه بخوای آره البته ما که احتیاجی نیست تا خط مقدم بریم ولی اگه بدیش به ما یه چرخ همین برا میزنی باشه مال شما به درد ما که صادق غغا صادق وارد آرایشگاه میشه. کار یه نفر تموم شده اه اه ببخشید من یه مأموریت فوری دارم. وقتم هم خیلی کمه. لطف کنید یه دستیار ضروری ما بکشین. من حرفی ندارم. ولی اینقدر رو نوبت گرفتن و ببخشید آقایون من یه کار ضروری دارم. بعدم خیلی زود برگردم. این مأموریت حیاتیه. بیشتر از این هم وقت ندارم. بعد هر چیزی رو برگردم. منو ببخشید. بلا فاصله صادق جاش میشه. خب من حرفی نداریم. شما که را بیفته کار جنگ را می 6ش فته رو از من سلاماتش یه سرما سلام فکر می کنم از بچه های اطلاعات بشه مردی موسم با کلاه پشمی اونجا نشسته یه جو بزن که از این افته در بیام خیلی تغییر بکن چشمحت مرد موسم به صادق نگاهی میکنه صادقم از توی آینه متوجه نگاه اون میشه معذبه آراژگر کارشو شروع میکنه کمالی نگران دنبال صادقه که توی آرایشگاه پیداش میکنه میاد پیش صادق خوب همین یاد <تصفيق> گرفتی ها. حسابی رو افتادی یه خبر خور قضیه <تصفيق> حل شد میتونید بریم جلوتر <تصفيق> جلوتر ی... یعنی خ... خط مقدم از که بیتابی کردی میرییم جلو دیگه چه فرق میکنه کجا تو آرخلی منتظردم بعد از اصلاب بیاجا رو بیفتیم بررفتم باشه آراشگاه چفهه صادق رو برمیدارره و سر سره بسیجی تبرکه خدا شاهد بیوزو وضو دست بهش نمیزنن سر تو بالا بگیر بسیجی سر بالا یه آمبولانس وارد اون منطقه میشه و صادق از روی آینه اونو میبینه یه نفر از آمبولانس پیاده میشه یه نفردیگه بهش میرسه آقای قورونه خط میره منم شهرمنده ماشین خراب احتیاج اره به تعمیر اساسی داره بعد برامش شهباز صادق خوشحال میشه و یه نقشه جدید میاد توی ذهنش مرد محسن بازم نگاهش میکن بح, بح عجب چیزی ساختم همومه بفرمایین صادق سر بلند میکنه و خودش رو توی آینه میبینه چهره محسوم پیدا کرده دیگه سیبیلاش تاب نداره و موهاش آشفته نیست و روی پوست سرش آرام خوابیده. چفی هم دور گرده صادق بلند میشه بها. خدا سلامتی یه اسلام صلوات الله صل محمد صادق شرمنده به همه نگاه از کانکس آرایشگاه بیرون میاد مردی رو میبینه که با سنگ به بیلی همون ساختمونه ساختمونش جلو میره و یقهشو میگیره چی کار میکنی من هرچی و دست تو میکشم خونره بل کردی امون خدا اومده اینجا چی به به آقای مشینی لوکرتا ده به خدا بابا ای والا شما هم که حالا حالی همین بابا درز می خوب. خوب. این میگفت من درو خونه رو تحویلت میدادم لوکرتا خیلی خوب بلامان خیلی خوب لوکرتا حالا میتی شما میتی بودی چرا خونه رو بیچ کردی ممدین آ بالا اوسا خدا من گرفتارم خونه رو بل کردی ممدون خدا همین بهم کردی ممدون خدا من نگران نباش همین روزا برمیگردم 100 درصد خونه رو تحویلت میدم اوسا من عجله دارم باید برم یعنی چیزه م... کار مهمی دارم کار واجبی دارم این آمبولانسای خطش تمری اصلی میخواد این که حتما بعد برسونم به شهواز خیال تخت تخت باشه شما با برو به خدا من خودم ردیفش میکنم مو کردم چون اصلا نگران نبام قربونت برم دیگه سفارشی نمیکنم واسه شما خدا حفظت صادق به سرعت میتا بابای این بشر اصلا نمیشناخته واسه بهنات توی بهت خودش میمونه و صادق به آمبولانس میرسید به اطراف نگاه میکنه. حواسش نیست که پاش به یه حلوی میخوره آرایشگاه حالا مرد محسن نشسته. ظاهرا داره صادقو توی آینی میبینه که دورو برای آمبولانس. صادق از در عقب آمبولانس توی اونو نگاه می‌کنه. اشاره، کفشو دویید و داشت باخش می‌کردم. خیلی ممنونم ازت. رزمنده پیش کفاش پیر میاد و پوتینش رو میپوشه. صادق هم به کفاش نزدیک میشه. یه جوری چیزی هم گیری ما بیاد بابا. بله. اگه نمیتونم جن کنم خواهد که کفشاتونی که میتونم پا کنم نمیتونم صادق پیش کفاش میشه ببین پدر جان من باید برم دیگه فرصت ندارم یه آقا مید اینجا دنبال من میگرده یه پاش میلنگه موهای جوگندو داره. اسمش کمالیه از طرف من بهش ببین صادق گفت من دیگه طاقت ندارم دیگه نمیتونم اینجا بمونم ازش معذرت بخوام. بگو من حلال کنه. باشه پدرجو. بلی باشی، چاش. خیلی ممنون. قربونت برم. کفاش پیر واکس میزنه و مرد محسن توی آرایشگاه میبینه که صادق دزکی از در عقب آمبولانس سوار میشه. راننده آمبولانس با یه تعمیرکان میرسه. ولی من بازم میگم باید ببرم شرقواس. اینجا درست نمیشه. این حرفو نزن. یا آمبولانس هم یا آمبولانس. آخه دوباره خراب میشه نوکرتم. من یه کاریش میکنم، طوری درستش میکنم که دیگه خراب نشه. حاجی اگه دو سه روزی برات کار بکنه بعد ببرش اهواز هر بلایی میخواهی سرش بیار فعلا توی یه خط لازمش دارن بپر برو یه اسارت ای بزنیم این ماشین یی میخواد درست بشه تا حالا درست ای بابا با. راننده سوار میشه و تعمیرکار کاپوت ماشینو باز میکنه صادق که حرفای اونارو نشنیده خوشحال توی ماشین چنبات مزده روشن شدیگه؟ آه آ حالا شد صادق هم خیلی خوشحالید تعمیرکار پای پنجره پیش راننده میاد اوره خیالت راحت بشه تو این موقعیت نباید گوزش آمبولانس بخوابه یا آمبولانس هم یه آمبولانسه تو خج لازمش داره کل به خدا با مسئولیت شما ها. <تصفيق> بازم گفتی برو خداحافظ فنا انشالله که توری نه آمبولانس از جاده های خاکی عبور اجلوی تابری به طرف موقعیت شهید مشکینی رد میشه کمالی با عجله دم آرش میاد صادق نیست نگران میشه نگاهی به حمام میندازه اونجا هم نیست بی هدف را می افتیم که هفاش پیر اونو دیده آقا شماش شما به کمالیه؟ بله دنبال اون ریفق جوونده چی بود؟ شاده دنبال اون می آره آره خب خب فرس بیگم دیگه, دیگه طاقت نداری نمیتونه سر کنه سر به سر اومده خب حالا کجاست؟ رفت رفت کجاست پشتی آمبولان شوال شده رفت. از کدام طرف؟ فکر می‌کنونم رفت طرف خط. رفت. بله. چه جوری میگیری؟ می‌گیری؟ نمیجاری بری گناه داره وا. والله به خدا من جلوشو نگرفتم. خیلی عجله داره. ترمزش کرده. کی اسقفش جدا میشه و سوار ماشین میشه و دنبال اونو راه. جلوشو نگیریم میره تو دل دشمن. بابا این پسر دیوانه است. خیلی تو میره. آخرش کار می ما رو ببین چی رو با خودمون آوردین. آخرش ما هم با خودش تو شانس آوردیم. صادف اقعب آمبولاست راحت نشسته دست میکنه توی جیبش پول در میاره و پونست تومنی رو دوباره بر. نظرم ادا شکرت خودشون شکر. شکرت آره میدونم ای کاش اینطوری نمیشه. خیلی بچه آره خیلی بچه خب خودشون چی کار کنه؟ دست خودم نیست خودت بهتر میدونی زن، بچه، خونه، زندگی، پدر بسته بابا صادق بسته گمزنی چشمش به مرافه های خونی میفته اخوه اخوه خودشونم منم آدمم دیگه یهوی که نمیشه و غرب میشم شده بلد نیستم منو ننداز وسطا منو ننداز وسطا این دفعه فقط این دفعه سالم برگردم. قول میدم به خودت هم قول میدم که دیگه اصلا اینطوری نشه. آمبولانس از جاده آسفالت رد میشه. تابلوی یا محدی ادرکنی و پرچم‌های یا حسین اونجا دیده میشن. کمالی هم با پاترول پشت سر اون اینجوری این چه دیگه ندیده بودیم. اسلایشو بکنه، قصشو بکنه را بیفته بره خط. یعنی چه؟ حجی حدی داره. جونمون که اثر را پیدا نکردین. به آمبولانس نزدیک شده راننده متوجه بوق و چراغ پاترول میشه از توی آین بغل اونو دیده آمبولانس رو متوقف میکنه کمال هم توقف میکنه و از ماشین پیاده میشه قضیه رو به راننده گفته راننده آمبولانس عصبی پیاده میشه خواهش میکن فقط دی هم در عقب امبولانس رو باز میکنه و صادق می بینه. باید آت ترمز بوریدی که بوریدی دیگه چرا مرا تو دردسر میندازی بفهم ببین پایین یه پایین با ببین پایین صادق پیاده میشه راننده در و عصبی می‌بنده و میره سوار میشه و این هم ماشینه خوب یه ماشینی که سوار شده صادق شرمنده جلوی کمالی ایستاده و با گوشه چفیاش بازی میکنه و حرفی نمیزنه تا اینکه خواجون خسته شدم میدونم میدونم ولی مگه ما قرار نذاشتیم که با هم بریم و با هم برگردیم خب مرد مومن منم هم دارم همون طرف میرم دیگه تو هم میخوای با من بیای خب من از اولش هم دلم میخواست با شما بیام پس پس چرا زودتر نگفتی سواش سوار شاکه ناشی گری کردی آدم به کم تاغتیه تو من اونها سوار میشن و راه میافتند تابلوی به طرف خط مقدم نمما انصافاً دل اومد بدونی که به من بگی راه بیفتی بری پیششه خودم گفتم اگه براتون توضیح بدم ممکنه مسخرم کنیم الله چرا مسخره کنم؟ این احساس طبیعی منم مثل شما بودم مون شما یه کم فرداری اونند میره منو ببخشین که باعث ناراحت تون شدم تو این زندگی که آدمو و بیچارهای خودش شد و پاتترل به سمت خط مقدم میره. از پیچ جاده میپیچ و دیگه دیده نمیشه خونپاره درست خورد جایی که سه سنیه پیش ماشین اونا اونجا بید. شجاعت دلیری چه میدونم همه این چیزا خوبه اما هر چیزی اندازه داره زیادیش خوب نیست باید کنترولشی قربون آدم چیزفم منم هم همینه میگم ببین آقای کمالی من میگم زن و بچه و خونه و زندگی جای خود جبه و جنگ و توپ و توفنگم جای خود اصلا چرا اینه میگی؟ اصلا یه وقت پیش میاد آدم تو قلب دشمن پیش بره خب میره بره اصلا چه اشکالی داره ما هم میریم دماغهش بله خوشم اومد آفری درست میگم یا نه آره درسته جون من شما موافقی به حله که موافقم جدی بابا. جدی میگم باور کنید <تصفح> بابا ایوالا ساده کمالی رو میبوسه بربونتون برم اصلا وجوده همچین آدمی تو واحد فیلم برداری یه قنیمت. شما یه حرفو نزنید. به نظر من واقعا شما ب... ا... ا... این چی بود؟ چی؟ ا... اون تانکه اون یکی دیگر من اونجاست اونا تانک های منهدم شده دشمنه این منطقه یه زمانی دست دشمن بود که ازشون پس گرفتم آه... ببین لام از کجا اومدن ها آدم لجش میگیره بزنه به سیم آخر بره تا ماشین متوقف میشه کمالی برگی ترداد خط مقدم رو به بسیجی که جلوشون گرفته نشون میده. کمالی با بسیجی صحبت میکنه و صادق تنها توی ماشینه گروه جلو بزن کنا نه بابا اینم آدمه میفهمه چی میگن آدم که نیم. کمالی لنگان لنگان با یه پیت حلبی به ماشین نزدیک میشه و گل داخل اونو خالی میکنه روی شیشه ماشین اه! به کمک بسیجی گلو پخش میکنه. صادق که سردر نیاورده از ماشین پیاده میشه ما... ماشینی چرا گل میمالی؟ برای که دشمن ما رو نبید د... د... دشمن؟ که دشمن؟ این دیگه چی بود؟ نه خودیه پس هستی همین فاصله هم میتونه بزنه؟ این که چیزی نیست تا چهار یا پنج کلومتر میزنن ما که همش دو کیلومتر با خط فاصله داریم دو, دو, دو کیلومتر آخی خیلی خیل. ما, ما از اون یک, یک باور کردنش یک از اون طرف آره از... باور کردنش مشکله می‌بینی اصلا اتیاجی نبود با ما آمبلانس کنیم <تصفيق> صادق که تازه فهمیده کجاست حسابی خودش خودشو به لبه پنجره ماشین نگه میده می‌لرزه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صادق از این همه انفجار شوکه شده اینجا دیگه آخرشو دیگه قدم. مقدم چی؟ سادق بازم که بیتابی کردی نه خط مقدم نیست بیاده شو صادق بیاده میشه با شنیدن صدای انفجار کاملا سر روی فرمون دفع آخری که با خودم میارمش عجب غلطی کردم اونم پیاره تو برای چی موند؟ فرماندهی سپاه با بسیجی جامعه صحبت می‌کنه و صادق اونام می‌گه شما الان باید خوره‌تون بشی تو رو خدا تو رو جان زهرا بذمونم اصلا وسیله نیست من برام برادر عزیز من راضی نیستم تو اینجا باشی چرا نمی‌فهمی حجی تو رو خاک اخوید بذمونم تو رو خاک منو قسم نده برو آقا برو برو آقا برو اهواز برو, برو تهران وسیله‌شم خودم <تصفح> برات میارم کمالی پیش <آه>. صادق آقای <برای> کمالی <تصفح> این فرماندهی چقدر با باحاله خیلی ازش خوشم اومد یه فیلم ازش بگیریم بله اون بسیجیه چطوره؟ اونم آ… آ... خ... خو.. خیلی خوبه. خیلی خوب. آرزو تو جای جای اونم. میخوا به روی زمین. صادقم شیجه میره پیش جمال. آقای مشکینی مسکینی، سوتو کشیدی قبل از انفجار بشین بابا ترکش میاد. خدایی نکرده لا اله الا بله بله. آقا پاشو بیا که یه کار خیلی واجب داری پاشو بیا. کمالی <ukpak Douglas> <unkugs> چشمش به تابلوی تعاونی لشکر خورده. بلند میشه و وارد کانکس تعاونی میشه. صادقاً بلند میشه و رفتن اونو نظاره میکنه. رزمندی جوان از تاوانی بیرونیه. بیرون چیزی توی دستشه. ببخشید در تاوانی چی میدن؟ از اینا میدن. چی هست؟ پلاک برای وقتی که هفوقی شدی میفهمی که خدا از سر تخسیراتمون بگذره. چیز خوبیه برادر اگه نگرفتی برو بگید. خ... خیلی ممنون. نه لازم نیست. ما قراره 48 ساعته برگردیم. فکر نمیکنم کارمون به اینجا بکشه ان شاء ان یا علی رزمنده از سمت راست صادق عبور میکنه و می کمالی هنوز بله. تو... اسم پدرتون چیه؟ چی؟ اسم پدرتون اده... حسن تاریخ تولد امن... من یا بابام؟ خودتون سی ه... هزار آقای کمالی؟ آقای کمالی؟ بله چی کار داری میکنی؟ یک کمی سرد کنید باید برای تون پلاک بگیرم آخه من پلاک میخوام چی کار کنم دستی دستی میخوامنه به کشتم بده آخه بقیم از تاوانی دور میشه آخه اینجا کجاست؟ یه باشی بکن ما رو بخوایی بفرسی قطم و قطم راحت بکنید یه ها میخوره به حاج آخه منسوریم سه باز کردیم حاج علیکم شما اینجا چه میکنی؟ خب من چیز دیگه چ یعنی برحال خب وظیفه است بنازم به این توازه نخواستید بگید که اهل جبه اید. الله آخه، خب گفتن نداشت خداوند توفیقتون بده واقعا شرمنده شما شده ببینم شما قبلا این طرفا ها اومدی بله یعنی تقریبا بله عجیبه پس چرا من تالو شما رو ندیدم کدوم قسمت بودیم آجا آقا تانک میتره کندم من. کی؟ تانک تانک؟ بله متوجه نمیشم چی کار میکردین؟ چیز دیگه ج... اسمش چی بود؟ جیب جیپی؟ پی, پی ج... جیپ نه آقا یه ج... پی جی آر پی... پی آر جی آقا می زدن. پی آر جی؟ نکنه منظورتون آر پی جیه احسن آر پی جی اینقدر زدم و آر... بعد اینکه یادم نیستی احسن اگر خدا حفظتون کنه من واقعا شرمندم که اون رفتارو با شما کردم اب نداره آجا شما خودتون نارد نکنی برایل کار دیگه پیش میاد دیگه کمالی ف... میاد و میخواد به زور پلاکی خودش دردن نمیتونم. صادق نمیتونم. نمیتونم. نمیتونم. صادق نمیتونم. سادق میدازه سادق خودشو از دست, فلات دست فلات کمالی خلاص شما ما منه به کشتن بدی. ما اصلا دیگه چیکار میکنی؟ ما قرار بود 48 ساعت معواز رو برگردیم. چی میگی شما؟ بنداز گردنت آقای مشکینی میگم وامتو بدن <تصفيق> بابا نمیخوام اون وام کوفتی تو. شما میخوای منو به کشتن بدی، وامم بدی اصلا نمیخوام بابا دست از سرم ورداری. چی از جون من میخوای؟ بگیر آقا نمیخوام. چیه به این تندی که شما میری کسی به گردتم نمیرسه. لاقل یه نشونی داشته باش. آقای مشکینی آقای مشکینی بابا آقای مشکینی بله بایست سلام علیکم حواست کجاست جوون گفتم به هر حال منو میبخشید من معزد میخوام افیار دویم خدا ببخشیم حالا واقعا کمالی با پلاک سلام, سلام. آقای کمالی پلاک رو گردن صادق کاری این چه من نمیخوام ما اینجا کاری نمی که این مال رزمنده هاست آقای این خمال... شرفی آقای مشکینی اینجا همه باید پلاک داشت تازه شما که ترمز بریدی بیش از دیگر ما داری. دارید بر صادق به پلاک نگاه نه این کم نیاد یه وقت یه وقت بعضیشون نرسه امخ آخه ما که نمیخواد یعنی چیز ما که دیاقت نداریم بگیر آقا جون این چه حرفیه بگیر پسرم ای برای تحویین هویت لازمه حالا دیگه یکمی خیالم راحت شد لاغل هر جو بری میشه باشه شما عرض نکنه راسی های کمالی پاتون در چه حالیه؟ از موقعی که یادمه از بد دی... ببخشید فکر می کنم ما دیگه خیلی کار داریم شما لطفا اون دوربین آماده کنی باشه چش با اجازه کمالی صادق مشکین ها میفرسه دنبال نخودسی چی شد چرا ردش کرده ای بنده خدا رو چند دفعه بگم حاجی جون من صلاح نمیدونم همکارم از سوابقم با خبر بشم. خیلی خب باشه خب حالا برای پاپ چهکار کردی؟ چی بابا ولش کردم دکتران میگن جنتیکیه ممکنه با تمرین و ورزش خوب بشه راسی همکار جوون افتاده و متوازهی اصال بله مارم کلافه کرده تا به حال آدمی به این شجاعت و پرشوری ندیده بودم شما که منه میشناسی خدا شاهد چندین بار اصلا من جا گذاشتی که چی زودتر خودش رو برسونه به خط مقدم. قدم الله اکبر بله من کنترلش کردم و الا الان اون جلو جلوها بود من یکی که بریدم پا به پاش نمیتونم بیام واقعا که پلاک برای این آدمها خیلی لازمه من و شما میفهمیم که احتیاط شرط عقله این جوون ها شور عجیبی تو زن صادق پشت پاترل قایم شده و سیگار میکشه و به پلاکش نگاه میکشه خدایا آخه اینجوری خیلی نغافله من اصلا آمادگیش ندارم زنم بچم پدرم کیف پولشو در میاره و به عکس همسر و دخترش نگاه میکن تو هم با این خواب دیدنه اه! کمالی و حاجی منصوری به اون نزدیک میشه. اید داده بیداد دوباره دارم میان حتما یه آشری که بستم پختم آخه خدایا یه رو صندوقی دیگه از کجا فرستادی؟ دادی خروس بی مهر ساده رو میگرد و نو پاکی به میزن یهو دیگه سیگار خودش بکنه و خودش مشغول کار نشون میده. کمالی و حاجی هم دیگه رسیدن به باشه. حاجی نزدیک میشه و میزنه روشونه صادق. آی مشکینی. اون مورد درخواست وام شما حله. جدی میگین حاجا؟ بله. شما وقتی اومدید ترون بیاد دفتر مسجد وامتون رو بگیرید. خیلی ممنون. دست شما رد نکنه. حالا شما کی برمیگردید در؟ فردا پس فردا برمیگردم ترون. سعی کن یه سری به من بزن. حتما. حتما. التماس دو. حاجی با صادق و کمال دست میده اونمی. حتما دیگه باید برگردم. اینو صادق میخوابه روی زمین. کمی از هم فاصله داره. دیگه موندن من اینجا قضیه نداره. کمالی خودشون میتن. میبخشید من میخواستم بگم که حتما میخوای بپرسی کی میریم خط. صبر داشته باش اگر بشه میریم چشم کمالی به طرف ماشین میریم جب گیری افتادیم میخواد ما رو به کشتم بده اصلا میدونی چیه خر ما از کرگی روم نمشته اگه پشت گوشت دیدی منم دیدی آره تا میبینه کمالی پشتش به اون آقه خران خستم کرده هر چیزیم حدی داره خط قدم کشتتش باید بهش بفهمونم که اینطوری اصلا درست نیست خب ما مثل بقیه آدمیم حال یه اعتقاداتی داریم اما نباید زندگی بکنیم ببین آقای مشکینی اصلا ما میخوایم برگردیم جلو نریم خط شیه دیگه بیشتر از اینش خوب نیست حالا میخوایی بری اون جلو چی رو ببینی که چی بشه اینجا مثل خط میمونه دیگه درست یا نه جوابی نمیشنبه تازه متوجه میشه که آقای مشکینی نیست آقای مشکینی آقای مشکینی ای بابا این شوخی سرش نمیشه چه زود به دل میگیره ببخشید یه نفر ندیدید که ریش داشته باشه یه چفی هم دور گردنش باشه لباسش هم خاکی باشه خوب نگاه کن نکنه منم بنده خدا یه نشونیه بهتر بده اینجا که همه این شکلی ام و ماشینا و موتورها بین چادر و در تردید هستن صادق مشکینی هم بی هدف راه میره یهو چشمش به همون جوونی میفته که به فرمانده التماس می‌کرد بمونه که حالا روی زمین نشسته شما این جوونو می‌شناسین آره سرمجه رزمنده جبهه می‌دونی مشکلش چیه این بابا دورو دیگه عقل بشه علی به خاطر عملیات نمیخواد برگرده منطقا بهش جیر داده باید برجرده رزمنده میروه صادق به پسر جوان که هنوز ریشش کامل نشده نزدیک میشه و کنارش میشه پسر سنگی برمیدار و به زمین میکنه آقای آخری، ببین عزیزم آخه آدم باید حرف فرمانده رو گوش کنه آخه تو نمیگه همین الان اون هم آدم تو خونه منتظر تو هستن فکر عروس خانومو بکن الان حالش گرفته است نگران پاشو پاشو با هم برمیگردیم من کارم فیلم برداریه خودم از مجلس فیلم میگیرم پاشو مهمون منی پاشو چی میگی تو حالت خوبه صادق جوابی نمیده نفس عمیقی میکشه که یعنی چی بگم انفجار نزدیک اونها خاک زیادی رو بلند میکنه خاک که کنار میخوابه لباس صادق خونی شده خون ساکت ساکت بابا طوری نشده یه برد خون پچه رو پیرنه شونه پسر زخمی شده ساکت ساکت چیزی نیست نگران نباشه الان میرم میدم نورده پسر اصلهش رو بر میدار به طرفی درد میدار سعی میکنی خودش رو قابل کمالی با ماشین از جاندهی رن میشه خدای عجب گیری افتادین این طرفا که نیست یقینا رفته جلو پسر پاک عقلش از دست داده مارم الاف خودش کرده اصلا ولش کن گیرم که پیداش کردیم بازم میخواد ور بزنه بریم جلو بریم جلو خط مقدم آخرشم معلومی چه بلایی سرم میاره اصلا بذار حد جهنم ری که میخواد بره بره باید سریع دید. گزارش بگیرم و برگردم خلاص صادق از تپه کنار جاده بالا میاد ماشین رو ندیده رزمنده ای رو میبینه به طرفش میره همون مرد توی مسجد. آقا ببخشید،ینه رسپ کنین. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید من میخوام برم کرخه که از اون طرف برم اهواز. این پل کرخه کدوم طرفه؟ یکم جلوتر یه تابلو هست، سمت کرخه رو نشون میده. اونو رو بگی برو جلو. بله درسته. تابلو به طرف پل کرخه اینجاست. فلشی امروز که جهت رو نشون میده. شدت انفجار تابلو رو چرخوند و جهت برعکس شد. صادق حالا به تابلو میرسه نگاه میکنه و جهت رو میبینه وانتی در جهت عکس فلش فعلی یعنی به طرف پول کرخه جلوی پای صادق میاست اصلا بالا خیلی ممنون خیلی من اونجا بودم اینجا قرار داره من منتظرم بیان شما بفرمایید بفرمایید شما وانت میره صادق منتظر ماشین میمونه یهو چشمش به لندکروزی میخوره که پر از سربازه. لندکروز توقف میره. و صادق ناامید پیاده به راه میفته. از تپهی بالا میره. به جای رسیده که تعداد زیادی سرباز در کنار جعبه‌های مهمات در حال آماده شدن هستند. از راه رفتن زیاد خسته شده. ناگهان چشمش به پاترول زرد خودشون میفته. کمالیه. سری خودشو مخفی میکنه مرد مسن توی آرایشگاه هم اونجا هست. اون صادقو میبینه ولی چیزی نمیگه. با این عجل محلق می‌مونه. مثل اینکه نازگرد تو ما رو بر نکرده. از تپه پایین میاد و کنار سنگر قرار میگیره. هاج و واج فقط نگاه میکنه موتوری از راه می‌رسه. راکب از موتور پیاده میشه برادره سریع تر سوار چیم؟ ببخشید آقا این این ها سر... کجا میرن؟ برمیگردن اقب عقب عقب برای چی؟ برای ترمیم استراحت نیروی تازه داره جاشون میره ی... یعنی خون میرن احواز دیگه نه؟ اهواز که نه؟ ولی تا نزدیک های کرخه میرن مقرش اونجاست خیلی ممنون قربون شما راکب موتور سمت سنگر. صادق فضاوش حال تو پوست خودش نمی‌گنج. نباید. نباید. نباید دستش بدم. دیگه وقت میشه. خدایا چرت. گریزت از حکمت ببندد دری. ز... گه گریزت از حکمت ببندد دری. سعی می‌خوام رو زمین. شریزت ز حکمت ببندد داری؟ آی درد جونم ولا شمیات دیگه بخشت برادر مشینا برام ببنده بسیجی جوون که یه دست نداره و صادق میخواد پیشونی بندش رو براش ببنده صادق قبول میکنه و بلند میشه اینا مادر تو یه پیشونی بند یا حسین ول همی گردنی صادق که پشت سر بسیجی مشغول بستن میشه یه نفرم پشت سر صادق قرار میگیره و پیشونی بند اونو میبنده و تعداد زیادی پشت سر هم ردیف میشن که برای هم پیشونی بند میشن بینندگان عزیز من از منطقه این ازیگ به خط مقدم با شما صحبت میکنم کمالی مشغول تهیه گزارش بود که صدای خونپاره اونو مجبور به نشستن کرد کمالی با نشستن گرد انفجار یهو صادق مشکینی رو میبینه دوربین و پشت پاترول میذاره و این بار اون از دست صادق فرار میکنه ماشین میان و سربازا در فضای باز پشت ماشین سوار میشه صادق لحظه مکس میکنه و میبینه که همه میدونه اونم میدونه اما ماشین پر شده و جای برای اون نیست ماشین بعدی اونم پر شده و راه به باد الله به باد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خوشت وانت شروع به دویدن میگنه میافته زمین شدت انفجار اونو زمین میزنه و ماشین میره همون مرد موتورسوار سوال برای سرش دست خوش آقا داداشت مگه از سیر شدی خدا نکرده <تصفيق> خدا نکنه جا باشو باشو با هم بریم مرد دست می میکنه و صادقم هم دستشو به اون میده و سوار موتور میشه نمیشه دو دبری چرا انقدر عجله داری من هر چی زودتر برسم دیروز بودش که فرقی نمیکنه تا برسیم شب شده اتفاقا شب خیلی بهتره چون کسی نمیتونه چیزی ببینه ببینم اب بچهای اطلاعات شناسایی هستی؟ آقا جون من من و بچه هیچکی نیستم. ای والله خوب دهنت ورسه. خوش اومد. راستتی که اطلاعاتی هستی؟ ولی کلا مطمئن از تپه بالا میره و پشت سرشون چند تا خون پاره. به موقعیت شهید مشکینی میرسن و موتور متوقف میشه. همه در حال رفت آمد و تکاپو. هر کس دیدین پیاده شو. مگه چیه مگه جلوتر نمی؟ جلوتر که دیگه واسه رو حمله جهانی یعنی چی؟ یک اون طرف خاکیز دشمن تو دشمن. مگه شما قرار نید برگردین نه. کی گفت ما برمیگردیم آقا؟ بابا من از شما پرسیدم این سربازا کجا دارن میرن؟ شما گفتی دارن میرن عقب، میرن ترمیم میشن، میرن استراحت. مگه نگفتی؟ آه! مرد یادش میاد. یاد پیدات. ببخشید خد. این این سربازا کجا میرن؟ برمیگردن اقا اقا بر... بر... برای چی؟ برای ترمیم و استراحت آقا من شرمندم من فکر کردم نفرات پشت آیفارو رو جونتو جون تو. زوی شرمندیگه تو به چه من میگونه خدای عجب تیری افتادم تو بابام من باید برگردم بگه حالی تو نید که نمیزه این به کارم برسم ای خدا آقا جون برادر من خیلی مخلصیم دیگه آبمون نکن دیگه من خودم یه وسیله برای جور میکنم برگردی او کردتم چها کردم یه دقیق صف کن که سر از کار این اطلاعاتی ها در نایی بردیم میرن جلو میان عقر چیکار میکنم؟ مرد از صادق جدا میشه چه کارم؟ چه گرفتاریه؟ داری؟ خودو چه صدا کردم مثل گزه صدایی مارود سق آخی خدایی ها آما کار کنم؟ اخوی اخوی یه ببین داداش این حاجی داره میره اقم نمازشو بخونه را میفته تو هم میتونی باش بده قربونه تا چه خیلی ممنون مخلص شما هم هستی نمازو بخونیم را می... خب بله نماز که باید بخونیم فقط یکم زودتر را بیفتیم که دیر نشد اینشالله این ببین داداش اینم ماشینه میره. خب دیگه با ما کاری نداری برخشید دیگه امدی نبود. هیچ میاد دیگه. با پیخیار خواهش می‌کنم اشکال نداره. هیچ میاد دیگه. از صبح تا حالا که فعلا هی داره پیش میاد. همه توی سنگل مشغول نمازند. و اونجا داره نشسته. خب چه کنم؟ من نمیتونم مثل اینا باشم. مگه گناهه؟ من الان باید برگردم. تازه اینا چه مشکلات زندگی منو ندارن. فکر نمی کنم اینا خونه نیمه کار داشته باشم. زن و بچه‌شون تو خاک خول شده باشه. خب خب اینجا همه خیالشون راحته اما من مشکل دارم نمیتونم اینجا باشم لحظه متوجه میشی که بلند داره حرف میزن مرد مصلم اونجا داره نماز میخونه خب. چرا باید این بلا سرم بیاد خدای اگه اگه بگم غلط کردم راضی میشی بگم بگ... بگم توبه راضی میشی توبه. توبه توبه توبه بابا صد هزار بار توبه خمر نجات بده از این شو. فکر زن و بچم باش. اونا چشبران خبر ندارن. نمیدونن چه بلایی سرم میاد. ای وای. مکن خواب الهه تعبیر بشه. بابا طاقت جنازه من نداره ها. خودشونو دمت کرد. بزو برگردم. مرد قد بلند سلام نماز می میده. صادق به نشانه ارادت دست به سینه خودش میذاره. مردم با همون حرکت پاسخ اونو میده. به گمان اینکه صادق میگه قبول باشه و بعد با حرکت سر میگه بریم. صادقم خوشحال بلند میشه. اما منظور مرد نماز اشا بوده. صادق ناامید میشینه و مرد که در حال تکبیره صادقو میبینه. نمازشو رها میکنه و بالای سر صادق میاد که ناراحت مشت به پاش میکنه. خبی، نصفه شما داره دیرتون میشه. آره بله. پس پوشید که ب... آه آه آه. قربون شما. بفرمایید من دارم میام. خدا خیرتون بده. خدا بچه‌تون رو براتون نگه داره. خدا ان عوضتون کنه. منظورم اینه که ان خدا ان عوض بهتون بده. آه. با این هرسه جوشی که می‌خوری معلومه مسئولیت سنگینه جوون. چیکاره‌ای؟ والله من تخصص قبلی چیز بود، تانک میترکوندم. نیروهای عراقی گلوله خونپاره رو آماده شلیک می‌کنه. سربازی با کرا خود وارد سنگر میشه امو امالی،, امالی، ماشین شما را ماشین دیگه نداریم محمد تا که میاره ای بابا اینم یک شهره خود تو سر ما امالی از صادق جدا میشه و میره بیرون صادق هم پشت سرش میره سرباز با ریختن خاک روی ماشین قصد خاموش کردن آتش ناشی از انفجار رو دارن صادق دیگه حسابی کم آورده بی هدف را می آخه چرا چرا باید این بشه واسه چی مگه مگه من چه گناهی کردم چه ستایی مرتقب شدم که باید باید این فلاس دارم بیان سر میدوی ساده خودشون میدونی جون ساده و میدونی آخه. بلند میشه. آخه این چه کاریه چه بلایی که دارین سرم بیاری چرا حقت منو این تلفن طرف میکشی یا علی اخوی سبور باش اوکی صبر تو چه طاقت چرا چه کسی نمیفهمه چرا حالیتون نیست آخه با چه زبونی بگم من باید برگردم عقب دستم هم انداختی آره من مسخرم من بدبختم زلیلم <تصفح> پاش به سنگی گیر میکنه و میافته صدای همون مرد آواز آوازخونه توی صدا سیماست مرد مشغول کندن زمین برای ایجاد سنگر بعد از مدتی سر بالا میاره و صادق می میبینه که روی زمین افتاده دوتا بسیجی به طرف صادق میان زیر بغرش رو میگیرن و بلندش میکرن به طرف سنگر میبرنش مرد مسن با کلاه پشمی هم اون میگیره توی سنگر صادق زانوی قم بغل گرفته و عشق میریزه مرد مسن یه لیوان آب برای صادق گریان میاره صادق لیوانو میگیره و آبو میخوره چه بریم کنم شده رفیقت چید شده بنده خدا لاغ خبر بدی براش ورددن هر کچه اینا بود میپکشت مشناس سرم ولی؟ نه ولی یکی می گفت و بچه اطلاعات چهاسایی؟ همینه دییه اطلاعات یا هر حرفی را گناتی نگه حتما یه م لبیه که به این حال افتیده. خدا توفیقشون بده. زنده باشیددل آه با. چیزی نیز بیزاری هم استراحت کنه خوب بشه اغبا شما که میخواستی برگرده اگر چطور از اینجا سر دار آورده نمیدونم خودم خودم هم نمیدونم یک یکم استراحت کن توکل داشته باش درست میشه چیزی نم خواهی چرا چیزی شما دیگه من شراخته باشی من هیچ کدوم از اونایی که همه فکر میکنن نیستم من, من اصلاح تندهی نیست نیستم اشتمایی تو شما هم برکردم دیگه دیگه نمیتونم نخش بازی کنم دلم میخواد برگردم سر خونه زندگی فقط فقط یه ماشین جور کن من رو برگردونه خب والا... الان که دیگه ماشین نیست انشالله فردا صبح همه این حرفا یادت باشه هر کسی نمیتونه تا اینجا بیاد باید اهل دل باشه با باشه خلاصش درست باشه ولی من هیچ کدوم ایدا نیستم نمیشه نباشه اگه نبودی تا اینجا را نمیدادن بله از سنگر میری روز شوی. مرد کلاه به سر جبه های مهمات از پشت بانت بر میداره و زمین بزنید صادق که پیشونی رو باز کرده ولی چفی دور گردنش از سنگر میاد بیره. مرد مشغوله و حواسش به صادق راست. صادق به ماشین نزدیک میشه. بازه همی فکری یه نگاهی میکنه. در ماشین باز میکنه. از طرف شاید راننده سوال میشه. از آینه نگاهی به مرد میکنه. پیاده میشه نزدیکی مرد. مرد نگاهی به کارش مشغوله. ببخشید پس منو کی میبرقم دیگه خودت باید برگردی بهیر ماشین همین زادن رو مستقیم بری کرخست رس دونزا ماشون رو بذار ایس که سلواتی بسار بازردش بوجه بس... به جای جرگه پس پس بقیه کجا رفتن جلو یعنی هیش که نیست به شما کمک کنه آغاتم شما برو من خودم یک کارش میکنم صادق مرددی بیری نهره میره و سوار ماشین میشه خدایا یعنی من دارم بر میگردم میره چی کارش کنم کار. مرد رو میبینه که داره تنهای جعبه رو جابجا میکنه ماشینی میبینه ماشین خاموش میشه ببخشید باشه چکش از ماشین پیاده میشه و کمک مرد جعبه رو بلند میکنه تازه میفهمه که جعبه خیلی سنگینه مرد جعبه رو زمین میذاره صادقا پشت سرش میاد و خسته جبر رو میذاره زمین در همین موقع فرمانده سپاهی از راه میرسه پس بالاخره لخره یه کمک بخواده یاد الله. زود باشین که در دارن میرسن به کانا برید ببینم چیکار میکنید یا علی ساده حسابی ترسیده چ... چ... چرا بهش نگفتی؟ من کمکتو نیستم چرا بگم؟ تو که تا اینجاش کمکم بودی دست درد نکنی زحمت کشیدی خوش اومدی ره هستی حالا که داری برمیگردی زحمت اینا رو بگیش کاغذ های از جیبش درمه اینا چیه؟ وسیعت نامه اکسی یادغاری از اینجور سیزه دیگه حضمشی که اینا رو بی زحمت داشته باش کرخر اسیدی همه رو بده گرانگاه تاقون تعداد زیادی زنجیر و بلاف که همه رو میموزه گرنه سانه بای صورت سانه یدولا آرپیجی و کیف گلوله ها رو بر میداره میدوه و میره صادق مونده و یه عالمه پلاک و دوتا عکسی که همراه وضعیت نامه بود صادق بلند میشه به طرف ماشین راه میافته سری میخوابه روی زنه خنباره جلوتر از اون نزدیک ماشین فرود اومده بلند میشه و تر راه میره بازم سری دراز میکشه روی زمین این انفجارم کمی جلوتر از اون و نزدیک ماشین بود آهسته بلند میشه آهسته قدم بر داره بازم خیز روی زمین و انفجار نزدیک ماشین <تصفيق> بخش دیگه بذار برگرد بلند میشه و میسته قدم قدم و با ترس و درس سمت ماشین میره بازم خیز و انفجار پشت ماشین که اینبار شیشهای ماشین میشکنه صادق لحظه ای همه چیز یادش میاد خواب همسرش کارت تردد بوسه آرایشگر بر سرش تمیز و مرتب شدن خودش توی آمبولانس پلاک انداختن کمالی به گردنش پیشونی بند بستن قطالی سربازهایی که جبه می رفتن ماشین اموحالی عشق ریزان می شینه این آخرش ما رو کجا بخوایی بگریم نبود قدر و قدر چه می دونم نبود دلت می خود ببر فرمانده سپاهی پیش صادق میاد. یا اینجا ببین من خوی. چه کار داری میکنی؟ گوش کن ببین می چی میگم. به یدالله بگو پیاده تانک ها دورمون شدن. اگه یه دونه از اون خرشنگ ها از رو فرات بشه یا حسین کار بچه ها تمومه. بگو پول باید دسته بشه تا ورق برگرده. بودا ببینم. برو تا دیر نشده آقا جون صبر کن آقا ببین. صادق تانک های دشمنو میبینه. کوله ای رو برمی داره راه میفته سمت یدالله. به طرفش دیر میشه اما هیچ کدوم بهش نمیخوره تا اینکه خودش میخوره زمین و اینکش میافته ید اولا که توی سنگر کوچکش نشسته و آر پی جی رو آماده میکنه صادق رو میبهی <تصفيق> چطور اومد این طرف؟ بیا ببیدم بودو بودو بودو دست سادر رو و میدوند توی, توی, توی سنگر و اینک شیشه گرد سادر توی زنگر بیا توی سنگر میشین مدید قرار نبود برگردی اگر با تایی خواب آدم بود او پرواندتون اسمش چی بود؟ کلوم یکی حاجی گفت به بگم که خب پیادای دشمن دوره از اونش دوره شو زدن خوب خود نمیتونن از اون طرف تانک ها رو بزنن اوضاع خیلی دید گفت من بایده بذاری این خرچنگ؟, خرچنگ آره این خرچنگ ها از سو کنار رد کنار باید بخش داشه چی نگام کنی چرا این پیغام آوردی چه, چه, چه, چه شده مکر؟ باش لامید رو خودم مادی نه نه خودم وادا نه نه کن نه کن خطو بگذدم بعد دیو خدا اینجا پنجاه مترم جلوتر از خط مقدمه دیگم راه برگشت نداری برای چی برای که اینجا تو دید مصدق مهرگی از نه بودی و رو بیرو پرت بلافاصله شلیک بهوش شد. میری، تو چه ذوره اومده اینجا؟ صادق زبانش بند اومده. خب حالا. حالا نگران نباش. عوضش اگه خرچنگایی رو که گفتید بزنیم، برق بر برمیگرده. ما راحت میتونه برگردی. تانکی به کانال نزدیک میشه. یدالله آر پی رو روی دوشش میذاره و آماده شلیک میشه. یدولا شلیک میکنه و گلوله ارپیجی از بالای سر تانک راحت میشه چه فکر میکردی؟ چه شد؟ انجامتن جلوتن از خطم و قدم شلیک بعدی یدولا مستقیم وسط تانک سادق الو الو که مثل بچه ها دست میزنه با نگاه یدولا دست دادن قدید تاکی که دیگه این استیک میشه. چون که یاد الله و اون دیگه از تاک. صدر گودولو آر جی رو از میز میذارم من میخوام میزم مثل پارت کنم. یاد به صدر. بالاخره گولی رو ازش میگیریم. سر جای خودش قرار. خوب به دستام نگاه کن. بلو رو روی دوشش خرار میده نشونه میده زامنی رو بعد شلیک درست به هدف برای ایرانفیا زبون در میاره و یدولا از این یدولا با حرکت سر خیلی خون سرد میگه باشه بلند میشه موقعیت خودشو کمی تغییر میده و پشت چند تا گونی دیگه سنگر میگیره لوله تانک به طرف یدولا میچند آماده شلیک میشه تانک زودتر شلیک میکنه و درست میخوره به سنگر یدولا صادق نگران به طرف سنگر یدولا میره یدالله با دست مجروح روی زمین افتاده و صادق بالای سرشه اونو ارپیجه رو بده بله صادق کمک می دلار یدالله رو از زمین بلند میکنه کنه و میشونه توی سنگه تکیه میده به گونی ها یدالله توان نداره و نمیتونه اونو روی دوشش بذاره باید از آرپیجی رو پایین میگیره و به تانکی که نزدیک میشه شلیک میکنه آقا صادق یه گله دیگه بذار بگیر باش داره میرسه اون تانک باید وسط کنال بمونه حالا بذار روی دوشت بذار رو دوشت شلیک کن من ساده. من من آقا صادق آقا ساده من دیر من نمیتونم یکی باز نیست خودت بیا آقا داره دیر میشه محتل نکن بیزار بای دوچت بابا شما اشتباه می‌کنی. ان از تم اونی نیستم که شما فکر بازم این توی ای که اشتباه می‌کنی. هیچ کدوم از ما این هم نیستیم زود باش. اون تانک نباید از کانال رد بشه یلا داره میره زود باش بلند شو یلا بیگه زود باش اجلا کن بزنیش تانک به پیش خودش ادامه میده صادق به گریه میافته صادق گلوله رو میذاره تانک جلوتر میاد صادق که اینکم نداره بالاخره شلیک میکنه اما گلوله به تانک من که گفتم نمی بابا من با منری کارره نیستم آخی چرا قبول نمی من نمی‌تونم تو بم ثابت میکنم که تو اشتباه میکنیقیالله آش ولی هاشو دیگه آشو یاله یه گله آماده کن صالت به ناچار برلوم تو آپی جین او همش اصلا تی نکن میشه بگیری فقط نگاش کن بعد دل بسمار به صاحبشو شکلی کن آشان. آشان آشان اونو روی دوشش میذاره صادق که خیص عرق شده و حسابی میترسه بلند میشه نیسته تانک جلو میاد چشماشو میبنده و درست به هدف اونم میگه ای بر. تانک رو آتیش می‌سوزه. صادق و یدول هر دو خوشحالن. یدول الله دستش رو دراز میکنه و صادق می رو می‌خندونه. یه تانک دیگه. صادق آر پی جی به دوش می‌کشه. لوله تانک میچرخه طرف صادق. صادق آماده شده دیگه. درست مثل خواب همسرش. تانک شلیک میکنه. صادق هم هر دو به هدف میزنه و صادق روی زمین می‌افته. رزمنده‌ها خوشحال به طرف اون میان. صادق روی تخت بیمارستانه که یهو از خواب بکتاش توی اتاقش اومده همسر صادق به همراه برادرش و پدر صادق و چند نفر دیگه از فامیلا بیمارستان بیمارستانش بابا عجب روحیه‌ای داره ایالت باریکلا چه تو مگه؟ هیچی گویا قبل از من کسی بهش خبر داده بوده ولی قرار نبود کسی بهش بگه آره قرار نبود اما یه جوری حرف میزد که انگاری از خیلی وقت پیش میدونسته نکنه. شاید. ببینم شما بهش گفتی که من زخمی شدم آره اما خب میدونی زخمی زخمی نه اصلا نزوش من حرف بزنم به من گفت آقای بکتاش من خودم میدونم ایداد بیداد گمونم خراب کردی آقای بکتاش برای چی؟ الان فکر میکنن بله افقیم شدم نه بله اون خوابی که خانوم برای من دیده بود فاتحه ما هم خوندن همسر صادق با همراه برادرش و پدر صادق و چند نفر دیگه اش فامله وارد مراسم شد همسرش که سوگ دیلی می شاطون ببینم مطمئن اینجا آوردنش هم کارش گفت اینجا اینجا چرا آوردنش اینجا کن ها چند بود رفتم چنگ اما تو راه خلاص ساکت من به خدا هیچ چی نشد سالم سالمم به به آقای مشکینی سلام سلام یهو کجا غیبت زد. بالاخره کار خودت کردی میدونی چقد من دهقره دورهت گشتم شنیدم از خط مقدمم جلوتر رفتی تا اول مقدم جداً به پاکی و خلوص شما قبطه میخورم دعا بفرمایید خداوند ما رو حمیدایت کنه اختیار دارین من هیچ شیاقتی رو ندارم حالا که اینجور شد بزورین یه خبر خوش بهتون بدم من تصمیم گرفتم از این بعد تو هر سفری که به جبهه میرین همراهتون میرم اه بله چت میگین هر سفری همراه هم البته هم. سعی کردم یه چیزی بهتون بگم که جا, جا جا که خوردم اصلا انتظار شنیدنشون نداشتم. اگر با من نبودش اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بهش کست میلی چرا ظرف مرا بهش به منان با فارا کار باشد به منان با فارا کار باشد جدایی منون را آر باشد اما مثل همیشه علی حاجی نوروزی صدا بردار بیدن سردبیر و تیه فرشاد آزرنی و بنده هم که به عنوان نویسنده و گوینده انجام وظیفه کردم به احرام سربری مجد. تا راژیو فیلم دیگر خدا میکردم <تصفيق>